دومین کلید سلامتی خوردن مواد غذایی آبدار است. بیش از 80 درصد از وزن بدن ما را آب تشکیل می‌دهد. با این سر نخ به نظرتان چه میزان از غذای روزانه باید شامل آب باشد؟ 70 درصد غذای روزانه شما باید شامل آب باشد. یعنی باید از میوه و سبزیجات تازه یا آب آنها استفاده کنید. بعضی ها بر این باورند که برای پاکسازی دستگاه های بدن باید روزانه 8 تا 12 لیوان آب نوشید. اما این کار دیوانگی محض است. دلیلش همین هست که آبی که ما می‌نوشیم کیفیت خوبی ندارد. وجود کلور، مواد مدنی و سموم در آب، بسیار بالاست. از این رو خوردن آب مغتر بهترین راه است. گذشته از این نباید بدنتان را قرق آب کنید. بدن خودش میزان آب مورد نیازش را تعمین می کند. در عوض سعی کنید بدنتان را با مواد غذایی آبدار تصفیه کنید. بر روی کره زمین سنو ماده غذایی وجود دارد که دارای آب هستند. میوه ها سبزیجات و جوانهها ما باید از طریق این مواد بیشترین آب مورد نیاز ما را تأمین کنیم و بدن ما را از سموم پاک کنیم. آنهایی که در برنامه غذاییشان میزان آب کمی وجود دارد دچار بیماری می شوند. اگر مایعات کافی به بدن ما نرسد، میزان غلظت خون ما افزایش پیدا می‌کند و مواد زائد و سموم بافت‌ها نمی‌توانند راهی به بیرون از بدن پیدا کنند. در نتیجه بدن به خاطر مواد سمی درون خود دچار مسمومیت می‌شود. شود. بنابراین شما باید غذایی بخورید که بدنتان را پاکسازی کند، نه اینکه بدتر آن را مسموم کند. اما سوال اینجا است که چه میزان از برنامه غذاییتان را آب تشکیل می دهد؟ چند درصد از غذاهایی که هفته قبل خورده اید شامل آب است؟ هفتاد درصد، پنجاه درصد، 25 درصد یا پانزده درصد؟ وقتی که در سخنرانی هایم این سوال را مطرح می کنم، با نهایت تعجب متوجه می شوم که میانگین پاسخ افراد چیزی حدود 20 درصد است. اجازه دهید همینجا مطلبی به شما بگویم. مصرف 20 درصد مواد غذایی آبدار یعنی خودکشی محس. اگر حرفم را باور نمی کنید، نگاهی به آمار سرطان و امراض قلبی بیندازید و ببینید که مرکز بین المللی تحقیقات سرطان خوردن چه غذاهایی را به دلیل فقدان یا کمبود آب منع کرده است. اما چطور بفهمیم که هفتاد درصد از برنامه غذایی ما را آب تشکیل می دهد؟ این خیلی ساده است. حتما با هر وعده غذایی سالاد بخورید. به جای خوردن شکلات و تنقلات میوه بخورید. تفاوت را زمانی حس می کنید که بدنتان بهتر کار می کند و در نتیجه باعث می شود احساس نشاط بیشتری کنید.